اللهم از صلّي از و یا از و دیال و در این اول بحث مواجه و جش و که پارلگان قبل از بحث قد متعرضون شدن از حضورتون که یکی از مباحثی که در اینجا مطرح کردن حضرات آسی و واقعا قابل بحث یعنی به یک جهاتی منافعی داده که داره برد روشن میشه این است که آیا از اعتبار احکام از یعنی امارات و خجنج و حاق از آقصول در شبهات و حکمیه در موارد که در حکم است آیا مختص به مشهده یا شامل مقلد هم میشه؟ این است که مفه شده مثل لا تنفذ یعنی به شک در اصل, در اصل که اگر شک کرده یکی از احكام استصاب جاری بشه آیا لا تنفذ یعنی به شک به خصوص مشهد میکره یا شامل آمی و مقلد هم میشه این بحثی که اخیراً مطرح شده بین ادام بعد از شیخ ربس الله و محسه. خب از شد که دو نظر وجود داره یکی تأمیم و یکی هم اختصاص مقلق مجده وجود که در اینجا یعنی جهات نظری یکی در اینجا محل بحث من افتادانی توضیح به اون نکات بحث ارز کنم ورد هم کلمات بعضی از احلام رو بخونیم و اینچهالا مسئله رو تمام شو. سه نکته میشه در اینجا مدنظر رو یعنی اون چی که مدنظر قرار میگه سه نکته هست. یک نکته راجع به کلام خود شیخ همساریست چون قرمون اعلام از مکلب که آیا مراده از مکلب خصوص مشهده یا هم یک نکته راجع به کلام خود شیخ همساریست نقطه یک رو به لسان علیه یعنی دلیلی که میگه مثلا علی امری و نهو سرعتان و عقه هما فه این این خاص به یا مثلا خود به مشته را و ده شاد در در منزله آیا این خاص به مشتهده یا شامل مقلد و عامی هم میشه بس یک نکته راجع به لسان عدله لازم بود یقینه به شمع و ها کذا رفع امومتی مالای عدمون این شامل مشهه به خصوص یا نه هم منز به مقلد مطلب سوم اینی که باقت ندار از لسان عدله خود این سرکه اعتبارات قانونی اقضاع میکنه که اقتصاات مشکل داشته باشه. مثلا روی یک جهتش مثلا این باشه که اصولاً این ادله جاری میشه مگر بعد از خرس و مثلا مد و عامی قدرته و فررس نداره. یا مثلا این بحث که اصولاً اونچه که به اصطلاح لسان العدل بهن مثلا در باور استسها عبارت از عملی بر یقین ثابته و اگر فرابشه که به اصطلاح ادله تأمین داشته باشه جری عملی به لحاظ حال مقلب باز باعث برکنه یعنی مُشره به لحاظ حال مُقلد جری عملی چون خودش این شک نداره اون خودش این بوفی اصلا اختلا بش نداره به لحاظ حال مقل... مقلد باید حساب بکنه از خود مقلد مشهد یعنی عملی یا تطریق عملی یا بقا عملی نداره اما به لحاظ حال مقلد باید بکنه که خب این هم خلاف ظاهر عدلل است یا از این جهت دیگه که اصولا تمامی این مسائل مثل مسئله حجب قبروائل حجب دجماعی در حجب و, و مسئله برای اشتغال استثمار تخیر تمام این ها در رسول عملیه و غیر رسول عملیه معتنیست بعد یک نوع و نظر داشتن و صاحب نظر بودن این طور نیست که فقط بگیم یقین صابر و شکل آهر همین که این مقدار یقین صابر و شکل آهر باشه این مقدار کافی نیست باید یک نوع باشه و این یک خوب میخواد مثلا بگیم آب کر نبود، نجس بود حالا با شریفیم تا کر شد ما المتمم و کرن بگیم آقای مقلب شما هم حکم بکن به نجاستش چون سابقا نجس بود یقین داشتیم حالا هم شک داریم پس حکم بکن به فراسون این کاری که مقلب مقلب انجام بذارد که هم به مشتهید ندارد خب این خلاف یعنی این مذقل از اون جده ایسا. این این طور نیست که به همین مقدار ختم بشه این باید عدله استثال نگاه بکنه عدله مخالفین رو ببینه موافقین رو ببینه اقوال رو ببینه فوقهای عامل خاصه این عدله رو مراجعه کنه اینها رو به استرال سنگین بکنه آیا شامل اینجا میشه؟ نمیشه شک در مختصیه شک در مانع مانه معنی شکه در مانه, مانه, مانه. مانه این مرومه شیخ را فعلاله تصدیر قابل شمید شکل در مختلفی ها مانه باز در خود این که اون مانه یا نیسی اختلاف در اصلا مراد از در مانه یا نیسی در خودمون خود اون عبارت اختلاف در پس در حقیقت اینطور نیست که مشته که اینجا یه یقین سابق هست یک شکل لاحق هست پس تو عمل بکن کن به به این مقدار قضایی قابل حل نمیشه اصولا احتیاج به یه خوب داره اشتهاد داره مبانی داره مبانی رجالی حدیثی تا تعیید بکنه حدیث رو خیلی کار داره اینطور آسان آسان نیست که مثلا بخواد در اونجا در ماه متمم کشت استثار جایی کنه نکات فراغای داره که اینها عادتا از شخص آمنی ساخته می حال اگه بگید هست اما نفعیسی و مقلد هست اما میفهمی این قضا داره زهارم مش این اصول استصحاب، قرائت، اشتغال، تخیر در شبهات حکمیه در جایی که در حکم کلی باشه این کار به اصطلاح مقلد نیست حتی اگر باشه یا ما تو این مسئله فصل کردیم در این پیدا نکردیم به حکم عقل قه قابل بیان که بگه بله هم میگه بله قه اصلا خود اینکه آیا ما قاضی قه قابل بیان داریم یا در مقابلش در وجوب دفع ذرا محتمل داریم یا در مقابل او به اسطلاح در مقابل اولی آلیه حق و طاعدم خود اینا اشتهاد میخواد خود اینا خبردیت میخواد خود اینا بررسی میخواد لذا با وجود این شواهد رجوع به, به سلام مقلد به عدله درست به نظر نمیرسه پس یک دفعه کلاصه بحث رو جمع بکنی یک دفعه بحث رو کلام شیخ انساری ایلام اندال مکلف ادل کسها یه دفعه در لسان ادل اعتباری یه دفعه بعض در خود واقع اعتباری و قانونی این طرق و اصوله که اصلا این طرق و اصول خود به خود در هفت مکلف ادلش جاری نیستی میخواد لحظی باشه اون روح قانونی چون هر قوانین داره یه روح خاص خودشه اما هم باید فلسفه اصولی فیلمان از فلسفه اینه یعنی چیزی که حاکمه و اون چی که روح قانونی حاکمه نحوه برخورده با عدله است که کار مقلد نیست مثلا کار مشتهده مثلا نحوه برخورده با ادله. اینطور نیست که آمیرزون رو با ادله برخورد بکنه حتی اگر مشتهدش بگه مثلا به اینکه که من در این مسئله گشتم چیزی پیدا نکردم پس خواهده قبعه اقاقلا بیان شده میشه حتی این مقدار هم به درد آمینه میخوره بنده توضیحش را ارز کردن بنامیشتی یه... موکر نهست م... بسته مثلا بکنه تفلیف دهاره هم که مشت ازنی؟ که مشت ازنی؟ خب داره بزن داره روزو کنه اولیه اون رو نمیدیده لا تنگوزل یقینه به شک اون رو نمیدید یقدر فرموزید پس این دخلت بکنید ما در بابه به اصطلاح این موارد لابد در وجود قدرت بر استنبال به و استنبال اشتحاد یا فقا هست به تحبیر ما و اما مجرد این که او بگن ما گشتیم در این پیدا نکردیم شما قاعده قویه بابه لابنش نمیتونه این نمیشه چون خود این صغرا نیازه به فرص داره کبرا هم نیازه به تحریر و تحصیل و تحریح داره خب حالا یک تحریح می کنیم آقای کویی می که هم در تشریح سقرام مقلد به برگرده از واقع رو برده هم در تحریح کبرا بهشون برگرده و اینجا این بحث می که این دیگه چه فایده داره چه اشتحالیه چی جور اجرایه اصله اینکه آیا ما در مورد شک براءة جاری کنیم یا اختیار اینو بر جامعه بشه اینی که ما در اینجا بیان نداریم دلیل نداریم بیان بر جامعه بشه میخد باشه کار کنه بخواد بعد براءة جاری کنه خوبی این کارا هم در حقیقت یک امر لغوی است در باب اعتبارات قانونی هم کبرار رو مشهورش برگشت، هم صغرا رو برعکسه بعد ادعا بکنیم ادله براءة اون رو میگیره خب صغرا رو گفته شما دیگه براءة براءة نذارید این چه تصویری است که انسان بکنه مثلا دا تنقضی یقینه بشن دیگه آه من استثاب در شباب بکنید جایی میدونم چون این محل سلام اینجور نبید خیلی این در این هم به مشته زرگی دو در مورد این آبی که متمم است کورن این یقین سابق داریم و شکلاه خیلی خیلی این هم به مشته زرگی سه ما در خلاف حالت سابقه دلیل نداریم فرض کردن دلیل پ که در نزیدی کار بکنه اجرای استثاثاب بکنه این چه نکته ای باره؟ یعنی چه فهمیست از نفسی یعنی چه یور انسان سهم قانونی پیدا تمام کارها رو اون مشتر انجام بده برای اینکه این حال دیگه استثاثاب جاده این چه استثاثابی هستن؟ از این چه یور تصویر قانونی از این مطلب تصویر میشه؟ پس این سه تا نکته اساسی وجود داره که باید تنبی این معنی است این اینکه در کلام شریع اعلم ان المكلف الى التصدي الى حکم شرعی این التفات مراد چیه قیل التفات در اینجا یعنی همین که بفهمه که وظیفش چیه این مراد از التفات اینه یعنی از قفلت در بیاد گفتن اگر مراد التفات این باشه این به اصطلاح قید توضیحی میشه چون اگر این غفلت داشته باشه تکلیف نداره در حال غفلت به تکلیف نداره اگر تکلیف نداره یه مکلف نیست عنوان ایلم عمل مکلف صدر نمیکنه و لذا اینها قائل شدن که این التفات مراد التفات تفسیری است از التفاظی که در تکلیف معتبره یک التفات در تکلیف معتبره و اینکه انسان منتбут باشه قافل باشه با تکلیف در نائم باشه صاحی باشه ناسی باشه، قافل باشه یک یعنی اون این مراد شیخ نیست مراد شیخ از التفات این نیست التفات تفسیبی مراد این است که انسان بعدله مراجعه کنه به کتاب، مراجعه کنه به روایات، به کلمات، اصحاب پس مراد از التفات و التفات تفسیری بگیریم که التفات بعدله مراد باشه وقتایی در میشه قید احتراضی مشکل هم دیگه پیش نمیاد مکلب هم به معنای خودش. و اگر این التفاق تفصیلی شد مراد از مکلت بنابراین خصوص مشهر میشه بلا؟ چرا؟ یا برای شهر پیدا میشه؟ نه التفاق یعنی اگر برگرد به لسان بعد از مراجعه به یا قطع به حفظ یا زن به حفظ یا شهر. مرموم ناینی نظر و اینه نظر مرحوم ناینی که این التفاظ التفاظ تحصیلیه و لذا مکلف در عبارت شیخ مراد خصوص مشتبه و لذا هم, هم خیلی اعتراضی میشه مراد از این التفاظ التفاظ اجمالی نیست چون اگه التفاظ اجمالی نباشه تکلیف نداره مکلف می اگر التفاظ نداشته باشه که تکلیف نداره وقتی لذا واسه غیر رو توضیحی قرار بدیم اگر مراد از التفاق اون معنا باشه یعنی اصل توجه در مقابل قفلت و صحب و نسیان اینها اینکه اصلا تکلیف نداره نیسان ساهی بنابر اینکه این در محلش خواهد آمد شخص ناسی در واقع تکلیف نداره نه اینکه که در واقع تکلیف داره اما به حساب ظاهرتی برداشته شده اصلا بیگن به شخص صاحی نمیشه تکلیف کرد نه به عنوان عالم و متذکر تو متذکر نیست با عنوان صاحی نه انسانی که فراموش کردی حکم تو اینه حکم تو فراموش کردی یادش میاد چی ها؟ همه شون بیگن نه نه فرقا فرقا آلم... نه نه عالم و چرا؟ با من حواظن جن علم و جن در تکریف واقعی تأثیر نبره اما نسیان در تکریف واقعی تأثیر داره اینشالله خواهد چون رو بعد خواهد آمد یکی از افکار مرموم نایمی همینه که حدیث رفت در پنج تا شرف واقعیه در یکی شرف اضاده اینه که از مبانی مرموم نایمیه. در حدیث رفت اون متن شیشتایی که اینا تأثیر میکنن روغان ما که از فراموشی و الخطر و نسیان و سرشون بعضی از صد صحرم داره قالو نسیان به شکلی داره حالا اون شکی داره, داره. متن حدیث راست ان شاء الله تو زیر و ما قواله امام علی سیری و ما ما در خصوص لای یعلمون میگه راست اظهاریه است تکلیف واقعا هست منجزه نیست اما در بقیه واقعا تکلیف نیست نه اینکه راست اظهاریه باشه در نسیان اینا حرفشون اینه که در ناسی واقعا تکلیف نیست چرا؟ چون با عنوان عالم و متذکر یا به عنوان مطلق مکلفین اصلا نسیان جده فراموشون به عنوان ناسی مثلا به عنوان جاهل میشه بروه ای انسان جاهل بروه حکم یاد بگیر ببینید بروه حکم یاد بگیر جاهله بروه یاد بگیر اما به ناسی میشه بروه ای انسان ناسی مترجع بشون چون تابش بروه ناسی خودش مترجع میشه ای انسانی که خود فراموش کردی ای مکلمی که حفظ فراموش کردی ولذا از شد در اون حدیث دیگه رو رفع القلم عنه سوی حتی یختلم و عنه ناهم حتی یستیغز و عنه مجنون حتی یوفی در مثل مجنون رفع واقعیه اما در مثل ناهم واقعا نیست تنجز نداره در حقه انسان خوابیده فکریش داره نحره رفع قلم از ناهم هر بکنه تا رف یکی هم, هم شانند نه هر بکنه اون ناآم اصلا اون تکلیفش میشه و اونجا پیدا کنه ویدارش بکنه. چه اصل تکلیف اما نسبت نه نسبت ناسیب. بنا اینا اینه. اونی که میگه اصل تکلیف هست کسانی از که, که با اصلا توی تکالیف این حالات لحاظ نمیشه. تا خطابات قانونی روش حراتی صریح و ناهم و اینا اصلا لحاظ نمیشه لذا تکلیف هست اینی که قائلش کتاب قانونی میدونه و در کتابات قان اما به عنوان خطاب شخصی والا فرض کنیم به ناهم صایقی نمیشه تکلیف کلناسی علل انحلال علل انحلال روی چه مشمول علل انحلاله دقیق فرمودید حسب براوره این و لزام اثر منو مرحوم ناینی در حدیث رد در اون تنشا رد رو واقعی میدونه و در اون یکی ظاهری بود از راسه این روی مبنی ایشون که حدیث رفت راجع به احکام هم جاری بشه راجع به هفت هم بیاد ما چون اصلا حدیث رفت به جوری دیگه معنا میکنیم، به عنوان بر... به اصطلاح رفت عنوان اصیان اصلا حدیث رفت نازره به رفت اصیان و تمبوده که در این حالات سته اصیان و بر برقانون وجود نداره ولذا خواهی نخالی احکام جزائی مترکب نمیشه حدیث واقعی از نظر ما اینه ناظر و رفت و در مقام واقعی یا ظاهر نیست تو این مقام اصلا کل نیست به هر حال خیلی چه این وقتا که دوست کرد که اونجای خودش که خود آدمه تفسیری که وقتی که از, از دل, دل اطلاق و دولد فهمید که این باید برای جاری کنه یا از اطلاق جاری کنه باید شکر کنه یکی داره که نه مستقلش ه حالا اجازه وه یک مثلی خوادیم چون شبیه این در یعنی نزدیک به این عبارت واجه در کفایام به نظرتون باشه. اون باشه که میگه شک نیست چون بعد از شک علم به وظیفه پیدا میکنه پس اونجا هم قضیه پس دو حالت میشه حالا اون بحث دیگه‌ای چون بحث خاص خودشه فعلا سر کلمه انتفاط که آیا مراد از این انتفاط پس اون شد بود مرحوم اصولا این دو تا رو انصافاً کلمات مرموم ناینی برای شرط رسال شیخ خیلی خوبی یعنی شیخ مرموم بیشتر روی مکتب شیخه و انصافاً حرفای شیخ رو جمجور کردن یک انسجام کلی به موالس شیخ دادن خیلی تنگیه کردن ایش رو میفرم مراد از مکلت در عبارت شیخ خصوص مشتهده و مراد از التفات هم التفات تفسیری شد. پس یک برس اینه هر این بحث به نظر ما خیلی ارزش علمی نداره مراقبش کند دادن باشه و سال عازم نهاد وزارت بار اما این گاهای خیلی کلی آنها هستند که سر صرف وقت بوده اند و مراد ایشان از ارتباط اجمالی و تفصیلی حالا گرچه معروف نیست در شرق اولش این مطلب داره این مطلب اول مطلب دوم راجع به لسان عدله لسان ادالل یهین یعنی اصل شده از شده. وی نخیص است وی نداره مدل صنایع دیگه فرستن همیشه دلیل ابراهیم نهندلی فنزور الارج و امن کم یا علمو شیعه امن قضا اینها و این یا علمو شیعه امن قضا نظری لاسمره ابو خلیج این دو صنایع هستن هردو یکیش یا عرف شیعه من قضا اینها یا قضايانا یا من شیعه امن احكامنا یا یا علمو شیعه توش عرفه علمه اینها آمده یا لاتربازی یهایی به شدت آمده این اینجوری این بحثی اینه که بحث, این بحث اساسیه آیا یقین مکلف و شک مکلف یعنی شک عامی و مقلد آیا این مشمول این ادله میشه یا نه علم مکلف ما یه توضیحش از کردیم تبر تص تصور ما لسان روایات رو باید گوناگون معنا کرد در بعضی از جهات اگر کلمه علم عرض شده شامل علم به تقلیل هم میشه مثلا طلب العلم فریضاتان علا کل مسلم یعنی انسان برش واجب علم یاد حالا اگر مشتهد بردله مراجعه کنه مشتهد نیست به خطوه های مقلدش مشتهدش مراجعه از رویت بگیره اون در اون عبارت صدوق که مذاکره علم در لیالی قبل هفضله ظاهره اون مذاکره علم های که سابقه هم ارز شامل علم مقلد هم بشه. اصلا شهار تا مقلط جمع بشن رساله ها رو بیارن یا آچی گفته اون آچی گفته یا این آقای بازی زنجه چیه این هم مذاکره علم برای صدقه میکنه این هم حالا خب بکنیش بهتر از تلیویزیون دیدن بحث دیگر این است که این هم الکلام اینه فنزو الارج رو نمی کن یعلم و من قضائنا این یعلم هم همینطوری رو هم. این یعلم و شیعن من قضائنا که در یه روات همارو نهنظره تو ابو خدیجه تو این روات هست کدو می آیا این یعلم شامل تقلیل هم میشه چون فرض این, این شخصی که الان می قدرت اجرایی داره می مثلا فضل کنیم قبره رو اداره بکنه اما مقلد شخص دیگ این هم صدق میکنه وقتی به فقیرش مراجعه میکنه یه علم و شیعن من قضا اینه خب یه علم دیگه لیکن علم او توسط پتوای مشهه بشه این بس به طور کلی هست که در عده از موارد که یقین آمده یا علم آمده یا یعرفه آمده این رو ما با خصوصی یا که یعنی اخذ به ظاهرش بکنیم که شامل، مثل علم مقلل هم بشه یا نه گاه گاهی خصوصیاتی در مقام اختضار میکنه که خاص صفتری مراد باشه مردم صاحب جواهر و قبل از ایشان محقه قومی میگن قاضی میشه که مقلل هم باشه یه تقرید داشته باشه احکامه به اصطلاح دیات و وجود و اجرا احکام رو از مشته به خودش یاد بگیره و بفرمین مردان همون احکام فقیهش رو پیازه بکنه این کافیه چرا یعلم و شیعن من قضا اینا یعلم و شیعن من قضا اینا صاحب جوال قدس الله نسته و مرحومه محقق قومی میگن اشکال نداره اینم یعلم و شیعن من قضا اینا و ایسته داره این لا تنبازل یقین هم اینجا همه گفته هم بیا تقیه ایشون آقا ما یقین داریم و شک داریم و چیزی پیدا نکردیم پس احس بکنیم به یقین این دیگه توی فرق نمی خودش این کار انجام بده یا مجتفقیش انجام بده در این جهت فرق نمی این طرف یک طرف یک طرف دیگه میگه نه در این جور موارد لحظه علم از این جور علمی که مقلل سریه مقلل هم میداره که علم داره ولکه از او منصرفه این در حقیقه جاهایی که میان یک ارزش خاصی میخوان رو انبار بکنن این جور جاها مثلا اللهم رحم قلوبا الذين ياتون من بعد يرجون حديثی این یرجون سنتی این نیست که یک نفر فرض کنه عامی تر یک به عربی بلر یا ما عرب هست کتاب کافی رو باز میکنه یرجی یعنی کتاب کافی چش بگیم این خلیفه رسول الله هست. مثلا اللهم رحم این رو میگن نمیشه این جور جاها این لفظ انتراف داره اللهم ارحب خواهی الگی نیتونه الگی نیتونه بعد سنتی و یو علمونه ها الناس یو ها این تعلیم در اینجا این, این علم شامل تقلید نیمشه و این نکته اینه که اصولا اگر دقت بکنیم علم آمی علم نیست صحیح یک درجه اینکشاف هست لیکن اون درجه همکشاف او با بسته به غیره از این آقا مقلده مثلا میگه درباب سرقه و دوبار اقرار بکن و دستش بریده بشه اون آقا فوقش میکنه کنن از آقای خویی تغییز می کنن ایشون باید یک بار و دستش بریده بشه پس یک وقتی اعتفاضش میشه و دیگه پیش که دوبار سرقه این. این قاضی نیست اونو قاضی که دیاره مقدر بشه یک آقای دیگه چی میگه طبق <تبر> نظر <و> او عمل بکنه مثلا یک آقای دیگه بگه علماء المتمم یا مثلا استثاب در عزدک آتنما چون چکلی در مقتضیه جایی نیست یک آقای دیگه بگه نجاییه مخصوصا یک میشه خودش عوض میکنه من رو آقای بزنگی استاد ما عزدسالله نفسه تو منتحر اصول. سمع مردم استاد شما این دائمی در مختضی در حساب در مورد شکه در مختضی حساب جاری نمینه اما در دوره اخیر شما میراث خدمتشون که در در از حساب و از شکله کردن قبول کردند. خصوصا موافق با مشروط کی شکه در مختضی و مانع هر دو جاری می‌کردن خب خود این مشتر عرض شد که بی فرض مقدمه ایشونه یه روز میگه این یقین نشه عقب بکونیم یه روز دیگه بشه عقب نکنیم هیچ چی هم به خودش بر نمیگرده خب فکر بکنید تلاش بکنید هیچ چیزش به خودش بر نگرش نه اینکه عمل بکن بگیر استصحاب و برگرشن این که عمل نکن اینا حرفشون اینه که این جور یقین یعنی و شرک این یقین یعنی و شرکی نقطه این اصلا منصرفه الگزین یاتون من بعدی یعنی سنتی و یعنی مونا آننا این علم تقش تقلیدی رو نمیگیر اصلا بگه فتوای من اینم پس سنت رسول الله این از مردم تعلیم بکنه بعدی مشتهید خودش پر کنشه از خود رو مشتهید دیگه بگه این از سنت رسول الله این از و این تعلیم به مردم بکنه انصرافت داده اصلا یعرف و علمه علمه شیعن من احکامنا یعرف و شیعن من یا همین لا و ذل یعین این, این یعنی و این شر اصولا در جاییست که برای خود شخص دهاز بشه اون یقین خود یقنه در لغت عرب حتما محترقی به معنای ثبت چرا یقین باشین؟ چون حالت ثبات دارید مثلا شما الان این روز بکنید این حالت ثبات داره هرچم به شما میگن شبه باور نمی کنید. این رو میگن یقین خود شک معنای تزلزله. این شک معنای زیغ هست معنای تزلزل هم هست ببین، این دکتر دقیقا کنید شما میگید آه بخشون شون وزیفت بعد الان وزیفه پس این حکم ثابت استصاب بعد مشتردش عوض میشه یقین اون آقا عوض میشه این یقینه که خارج از دائره ادراکات شخص عوض میشه این رو یقین نمیشن که در استصاب آمده این یه اصلا ما این باید توجه بکنیم که در عزه از جاهای یقین علم معرفت تعلم تعلم اینها یک جوری عقص شدن که باید برگرده به حالات ادراکی شهر برطر هم تغییر بکنه بر اثر ادراکات شهر تغییر بکنه خوب برطر بکنه مثلا این آقا فسواش تا دیروز این بود که فلسف نصلاحای تا این دوره اول تنگیه نگاه رو زرماید ایشون مقبوله امروی نهنزده قبول دارن چون مقبول شده و محل تسالوم حساب شده به تعدیلشون باید در دوره بعدی برگشتن قبول برگشت این قبول کردن و نکردن این تابع این نیست که شون مقلطه مقلطه ناینی بودن بعد مقلطه آزی ها شده مثلا این قبول کردن و نکردن برمیگرده به خود ایشان اینا بناشون به اینه که این در علم بودن مذر نیست خوب دقت بکنیم اون علمی که میخواد موضوع این احکام بشه روشن شده میخواد اینجا بحث فلسفی و منطقینا نیادیم اینا بحثشون اینه که موارد استعمال علم مختلف این یک نکته فنی لطیفیه. اگر تزلزلی در او پیدا هم بشه، مربوط به ادراکات خود هم باشه، این به یقین بودن، به علم بودن، به ظهور او پیش او بودن هیچ موزر نیست. اما اگر ونامیشه این تزلزلش خارج از داره ادراکات او باشه، وو اصلا نداره. امروز مقلد این آهابویی مفهومیه. فرق مقاله ای که هایدگیش رو فوت کشته، مقاله هایدگیش رو جهت شد. این به این بر نمیگرده این رو یعلم و شیعن من قضا انا بهش نمیگرد به این نمیگرد یعلم و شیعن من قضا این یعلم علم فتوای مفتی را این لاسنگذر یقینه به شکلش نمیگرد آیا دوید بس... آقا این مغلب. اون علم که متابقه با شد دونه همان یه نموشه اون میشه خونه چون موضوعی علم نیستی نه پیدا کرد به فضوا نه علم پیدا نگه چون اگه فضوا مشهلش مرد شبیه دی آمد گفت نه اینطور می بادر میگه خب نه این همین این حالت علم نیست، خیال میکنه علم است. استباضه، استباضه یاری این, این به معنای شواذانه یاریه. حالا یک دو ثقاتی داره بلا اشکار. یک درجه از علم، یک معنای علم، طلب العلم پایزال کل مؤمن باید داشته باشه. چون وظیفه‌اش یاد گرفته. در مقابل یک مخلدی که حتی وظیفه‌اش هم بلد نیست. اما وقتی میگه یعرکشی عن من قزاهنا که علمش آل توه حاکمه، خود دقت. این جعل حاکمه یعنی اون خصلت علمی در خدا حاکم برمان حاکم موجود باشه دقیق اگر اگر بشه که صبح مغلط یک آوازی یک علم داره شب مغلط آقای دیگری که این نمیشه که از او حاکم هست این علم اصلای علمیست این علمی که به دردی این کارا بخوره نیست پس یه بحث دیگه بحث علم ولاتن لاتنگزل یعنی به شک و عدلی مثلا رفع انومدی مالای علمون این مالای علمون بینید صدق نمیکنه. چرا؟ چون مشهرش میگه گشتن در این پیدا نکردن بعد مقلد اگه آقای شده گفت نه من گشتن در این پیدا اشتباه کرده این آقا منوز مالای علمان. صبح مالای علمون شب مالای علمون به به قطعه نکته پس اینه که ما با ارتکازاتی که داریم بعضی از موارد یقین و شک ولو به حسب ظاهر لفظ م شامل مشهد و مقلد هر میشه لکن وقتی برمیگردیم و دقت میکنی، میبینی مقلد رو شامل نمیشه. این هم اشکال دوم، اشکال سه، نقطه فنیش، اشکال سوم که اشاره کردم که لزوم فحص و خبرویت باشه. حالا میدونم روز دیگه نگذیند، ساعت دیگه هست، سه خیلی زیاد حالا من یه نگاهم اول مردمو صحبت میکنم، مختصر دخونم بعداً تا که شوم راجعه وقتی در انجام در خوندن عبارت مرموم و استاد عرض کردن این بحث رو دارن در این مصباح اصول چاپ جدید در صفحه چهار فرموندن امر سانی به تعبیر ایشان که مراد از مکلف مذکور فی کلام اعظم على انساری خصوص جلد سرس دیگه این شماره که پشت این نشه 47 در سرسول اما جلد دو دوی مصباح بله امر سانی فرقه ها هر خصوص و به مراد مرازن مکلف مذکور ظاهرش این که مرمون مستاد از راه تفسیر عبارت آدن بعدشون رو میشن اطلاع اطلاق از سانی تعجبشون به کلام شیخ به اطلاق و خوبه صحیح بعدشون فرموزن که صحیحش اینه که شامل میشه. از کردن اون اولین کلامشه خب روزه روایات که نیست کلام محصولی نیست حالا. اون سر هم توضیح نه متاسفانه سر بشید که اون ادلتفت به چی میخوره مرمون ها اینه و التفات تفسیری گرفتن پس مکلف ها مشته دیگران التفت و التفات اجمالی گرفتن شامل مقلل هم میشه این رو مرمون استاد شرم ندادن فقط محرم کردن حل المرادن المکلف المذکور که کلام شیخ نر اعظم این یه. دو این که بحث به مطلب مذکور در کلام شیخ نیست این یک جهت بحث بود یک جهت بحث دیگر این است که یقین و شک در لسان ادله مراد چیه؟ یقین و شک مقلب رو هم میگیری یا نه؟ این دو جهت بحث بحث این هم نبود بحث این بود که اصولا به لحاظ اعتبارات قانونی و روح قانونی عدل و اصولی رو که قانون قرار میده اینها خصلت‌هایی دارن که کار به لفظ دار این در واقع روح قانونی وجود داره اینها اختصاص به مشعر پیدا میکنه مثلا قیاس اهل نه، قیاس ذراعی و, و مختص به مشعر میذارن اگه یک نفر عامی قیاس کرد سر ارزش قیاس هم همین می میگن رقاص او فلان اگر اون شخص رو مشتهه دونستن قیاسش قبول میکنن قبول منهی که یعنی این حجت دارد. اگر اون شخص رو مشتهه ندونستن قیاسش رو قبول نمیکنن دقیق اون نقطه داره بحث سر این است تو اصولا عدله مثل اعتبار خبر واحد، اعتبار فعلا مجمعه لاره میفی این مجمعه لاره میفی این آیا است که به امثال عامی هم میخوره یا خاص به مشهوره پس کلامات مرحوم استاد افتضاحش خیلی همچین روشن نیست بعد ایشون فرمودن که ما در سه بحث وارد میشیم با این بحثی هم که من از کلام اصلا طرح بحث متاسفانه متأسفانه خیلی روشن نیست خب حالا به ما یکی بیان حکم مشتد نسبت به نفسش خب اینکه مسلمه که اون وظیفه خودم میخوام بدونم که بحث داره یکی بیان حکم مقلد نسبت به تکلیفش که مقلد یکی هم در بیان و حکم مشتعل به نسبت العلا تکیید و مقلدی ایشون از این زاویه بحث وارد شدن ما عاکریم صحیحش اون زاویه است که ما باید. مقام اولی که مشتعل از چه می میز بازیه مقام دوم ایشون دیگه فرق نمیکنه مشعل مغلد اگر عتوزن پیدا کرد شک پیدا کرد نسبت به حکم خودش با مشعل فرق نمیکنه فرق از اینه مشتعل عتوزنش به مراجعه به ادله مقلد قطع زنش به مراجعه به کتابای خود مشتهدشه مثلا مشهده اثبات استثاب دلیگه حکم میکنه مثلا ما مطمبن مثل کرن اما مقلد اینجور میگه مقلد من مشهد من سابقا اینجور میگه حالا شک دارم که هنوز میگی نه استصحاب میکنن ایشون میگن که فرق نیم میکنه نه در حکم واقعی و نه در حکم ظاهری و ایشون گرم فی این حسل به حکم اینال احکام عمل به بلا حاجتی نیل رجوعی در مجتهه و این لم یخ سل لغو القط فی این قام اندهو طریق المعتبر و طریق معتبر ایشون فتواز عمل به و این فقده و ایزن و بقیه شاکن فلحف رجعه الال اصول العملیه خب تعجب از مرمو استاد قدس الله نفسه با جلالتشانش خب تمام اینا محل کلامه همین هر جا محل کلامه <تصفيق> ایشان گفت این مصادره به مطلوبه کی گفت که مکله؟ حالا قاعده داره که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه ایشو میگه عمل به بلاحاظ بزنین در روش در مسجد خب همین محل کلامه همین محل کلامی که مقلل اثر هم پیدا بکنه نمیشه بله مغلط در احکام یقینی و اجماعیات و قطعیه بین مسلمی نه قطع مغلط که اینکه نماز واجبه میگن در نماز حقیل معنا نداره بگی من در حجیب نماز بین آقا نماز صبح دو تار این اتفاق قطعیه بین مسلمان هست احکام قطعیه غیر از قطع مکلط من که نمیتونم شد چیزیگی دیگه ایشان باشه تمام این مطالبی که ایشون خود اون مطلب محل کلامه اصلا اون مطلب خودش محل کلامه هر به اندغی اشاره کنه و فتوای مشهد رو پیدا نکرد چیکار اجل اصول عملیه او برگرد به مشهد دیگه اصلا متکلفه قادر میشی که انجام نده من خوب گوش نمیشین گوش نمیخیشم تا گوشو حالا <تصفح> كله فله حکم واقعی بعد در حکم ظاهری هم همینا فرمودم من که سر سردنای بودم آیان خودشون مراجعه کردن شاید چیزی برایشون رو بشه و اما زاهم وقتمون شد دیگه نیست و اما نمقام بعد و الله و